بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسيك من دارسات دارسية السري يوسف عليه السلام ويأيب عن جهيك الله جل شأنه قال ما خطب كنا إذا يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليك من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين إيكا شارك كتايف أعد بنا ويكاعدين چرا گذاشته یوسف برای اینکه استجابت بکنه دعوت پادشاه مصر شرطی گذاشت و اونم اینکه اول پروندهش دوباره باز بشه و اون زنایی که سبب شدن یوسف علیه السلام به زندان بیفته اون زنا بیان بگن که ماجرا چی بوده صادقانه بیان بگن ماجرا چی بوده پادشاه مصر زنا رو جمع میکن اون زنایی که دست خودشونو بریدن هنوز زلیخا در کار نیست بازجویی رو انجام میده، بازپرسی رو انجام میده، بازپرسی برای خودش آداب داره. شما در این سره آداب و احکام کشت و زراعت رو دارید، آداب و احکام دامداری رو دارید، آداب و احکام سیاست مداری رو دارید. همه اینها رو شما در سوره یوسف دارید که اصول آدابش، اصول آدابش. بتور کلی یوسف علیه السلام اینجا بیان میکنه و در قصه بیان شده الله گفته حتی از اون زندگی روزمره‌مون معاشرتون با زنا چطور باشه چطور نباشه اون زنا چیکار میتونن بکنن چیکار نمیکنن از کید از مد از غیبت همه این ماجراها روزمرگی برای ما یعنی روزانه باش سر کار داریم یکی از چیزهایی که شاید در زندگی روزمره خودمون روزمره که نه در زندگیمون شاید یک بار دو بار سه بار پیشات پیش بیاد شاید هم نیاد الله پیش برای کسی که جلو دادگاه قاضی کسی نیست پادشاه مست الان خودش قاضیه پادشاه هست قاضی هم هست بازپرسم هم هست بازجویم هم هست زنا را آورده هست آداب بازجوی اون چیزی که در اصول بازجوی و بازپرسی هست اون اشتباهی که یعقوب علیه السلام مرتکب شد به قول خودمون بهانه رو در دهان بچه هاش گذاشت مواظب باشه گرگ نخوره و بعد گفتم بلر گرگ خورده خودت گفتی گرگ رو میخوره باز پرس و باز هیچ وقت نمیاد از قالب شک عوض رو بهانه رو جلوت بذاره نه تو رو در قالب اتهام میگذاره واقع قرار میده اینجا این اصل رو شما دارید در اصل بازجویی میگه که ما خط بکنه اذراوتنی یوسف هنه. چرا یوسف را این بلا رو یوسف در چرا این کارو کردید یعنی انگار یقین داره مدر قطعیه. شکی در اون تهمتی که القاداره میکنه یا در اون اتهامی که بهش میزنه شکی در متهم بودن اون قضیه به اون شخص نداره این اصله همیشه هم متهم کسی که متهمه کار خلافی انجام داده مرتکب گناه جریمه جرمی شده خودشو میوازه اعتراف میکنه این اصله خداون برای دروغگو نشانه های گذاشته خصوصا پیشانی سن اونایی که روانشناسن اونایی که اصول بازپرسی رو می خونن این اصول روانی رو هم می خونن اون بازجو وقتی که ازت سوال میپرسه نگاه پیشونیت میکنه که آیا صافه یا نه آیا شروع کیده یا نه آیا میلارزی یا نه در دهوه تون صدات آیا آدرس اشتباه میدی یا نه شاید اون باز پرسه اون اصلا کاری به اوناتام نداشته باشه ازت بپرسه خونت کجاست؟ تو کدوم کوست؟ کدوم رسه درس ونید؟ یک ساله طبیعی ازت میپرسه هدفش اون نیست که به جوابت برسه چون ربطی بهش نداره که تو خونت کجا باشه نباشه؟ مهم براش اینکه تو آیا دست پتو گم می یا نه آیا تو اعتماد به نفس خودت داری یا نه اونجا آثار اتهام در چهره ظاهر میشه یا نه این اصوله اصله. این اصلی که از لحاظ روانی اینها روشکار کردن و اینها میدونستن این چیزی نیست که مثلا پنهان ببونه پس اول اومد پادشاه مصر را رابنها وارد کرد تا ببین موقف روانیشون اگر متهمن که با خودشون می گرن. چرا؟ نه اومد که تحقیق بکنه بره بررسی بکنه بیاد مثلا شد داشته باشه در این قضیه در برایت یوسف نه با یقین اومد با قاطیت اومد با قاطیت اومد چرا این کارو کردید؟ خب مسلمان اون کسی که خطاکاره خودشون می بازه اونجا هم این قضیه روخ میده این اعتراف پیش میاد یک مسئله هم که به ما برمیگرده. اینجا الله بهمون به یاد میده در این سوره درسته که الان اینجا این زنا در این خطا واقع شدن و کار اشتباه رو انجام دادن. این قضیه بحث اتهام و تهمت در زندگی ما بارها و بارها هم تکرار میشه. تو در مقابل اون کسی که به تهمت میزنه چه کار باید بکنی؟ ما ها رو بر علیه خودمون میشنویم. چه باید بکنیم در مقابل اون تهمتی که به ما میزنن؟ اون اتهامی که بر ما وارد میکنن. موضع ما چی باشه؟ اونجایی که زن عزیز مصر، وزیر مصر اومد یوسف رو مراوغه کرد که در اون قصدرها رو بس. خب یوسف از خودش دفاع کرد. یوسف علیه السلام اومد با قاطیت از خودش دفاع کرد. قال روادت نی عن نفسي. خودش نوقله سان شکل قیافش این اومده پشت سرم داره میدوه و این میخواد رو به طرف خودش بکشونه. من کاری نیستم. خیلی جاهاست اینطوریه. اون شخصی که به خودش اعتماد نداره، دست و پاش می‌لرزه، نمیتونه حرف بزنه یا کنارگیری میکنه یا فرار میکنه. وقتی که در موضوع اتحام باشه و اون جرم و جنایت رو انجام داده باشه خیلی گفتم از تهمت ها ما میشنویم مثلا به فرض مثال زن از تهمت هایی که مثلا من تو 20 سال مسیر دعویم داشتم که زیادم هم که این هایی که پیروه سلفن یا مثلا میگن که ما پیروه قرآن و سنتیم اینها از انگلیس حمایت میشن اینا پول از انگلیس میگیرن شبهه هست خیلی از میخوان با این شبهه با این اتهام مردم را از دور بکنن کسی حرفتو نشنوه خب الان اینجا این ها برای دور کردن یوسف تو زندانش انداختن حالا شاید ما خصومی داشته باشیم یا بخوان مردم رو از ما دور بکنن یا ماری بکنن با اتهام ما رو وارد زندان بکنن یعنی این اصل هست همچنان یعنی با این تهمت و این اتهام کسانی که قلبشون مریضه سعی میکنن اون کسی که دوستش ندارن اون کسی که میانشون باش خوب نیست یا اون کسی که از لحاظ فکری باش مخالف یا اون کسی که تابعشون نمیشه نمیشه بشون نمیشهناکنین اصل مرابطه اینجا واقع شده اصل خواسته اینجا اومده زنا میخوان یوسف را به طرف خودشون بکشن این یوسف تابع نمیشه تابع نمیشه نوشت میدیدیم الان اصول سیاست ها رو همین الان حرفی که مبت میگیم گوش میدی نمی نمیدی نمیدی با یک امضا سرت بالای داره با یک تو زندانی تهدید میاد میاد. برات موری از برچسب از اتهام ذهام مردم گفتن که تو از پول از انگلیس میگیری خب بیار پیشش حواله‌اش بانک حساب بانکی که الان همه با بانک کار میکنیم همه حساب بانکی دارید بیار کشف حساب بیات حسابا رو ضرور کنید به قول نه فلان معامله 300 میلیونی داشتید خب 300 میلیونی داشتن بله ماشین فروختم خریدم ماشین چنه الان یک ماشین می‌خریم می‌فروشی چند پول باید بزنی به طرف حساب مقابل ماشین تو فروختی پول تو باید کجا بذاری بیار ریز حساب ها الان کسی که پول 300 میلیون تو جیبش نمیذاره که کسی میتونه از شما 300 میلیون با خودش هم ببره چیکار می‌کنی شما 300 میلیون پول تو حساب بانک میذاری بدکی کی میری بنگاه می‌خوای کارت بکشی کارت میکشی یا میری بانک حواله می‌زنی از این حساب حساب دیگه خیلی واضحه که خب کجا آمده؟ ماشین داشتی؟ فروختی؟ زمین داشتی؟ فروختی؟ شما سلسله اون پول راحت میتونید کشف بکنید آقا این پوله از کجا آمد؟ این از حساب کی به حساب کی؟ از چی؟ ای به چه معامله رفته؟ خیلی تسلسلش واضحه مکشوفه ولی چی؟ اون کسی که در قلبش مرزه، اون کسی که نتونست تو رو به طرف خودش بکشونه جذبت بکنه برات پاپوش درست میکنه برات پاپوش درست میکنه همون پاپوشو که یوسف درست کرده برات پاپوش درست میکنه نه اینا انگلیسی اینا یا وهابی هم پول از عربستان میگیرن یا انگلیسی ان پول از انگلیس میگیرن خب بیارید یک ریال عربستانی یک ریال عربستانی پوله به حساب من اومده مثلا به فرض بیرید سلسله رو بگیرید این پول از چه جهتی به چه جهتی وارث شده به حساب به چه وسیله به دست من رسیده خب ما تردد ما، خرید و فروش ما همه چیز مشخصه که کجا میریم کجا نمیان این همیشه حیله زعفا بوده مثل این زنا، حیله ضعیف، مکر زعیف هیچی نداره بهش دامن بزنه تهمت، تو جاسوسی تو پول از عربستان میگیری تو پول از وهابیا میگیری تو پول از انگلیس میگیری آیا شما جلوی الله الله حضرت نمیخواه در مقابل این غیبتتون تخریبتون اتهامتون که بالاتر از اون غیبت بالاتر از اون مکره آیا اونجا جلوی الله برهانی دارید که از خودتون دفاع بکنید که یک شخص را به مظلومیت اومدید پابند دادگاه و پله های دادگاه و این وزارت و اون وزارت کردید شما مسئولید در مقابل اون تهمتی که میزنید انسان باید معذب باشه اینجا در صحنه پادشاهی این جنای ستادن ما باید فردا در صحنه قضاوت الهی بیسیم جلوه الله ما مییسیم فردا چقدر ظلم بر شخص واقع میشه به خاطر همین تهمت ها، خاطر همین حرفای از حقد و حسادت و کینه و بغض و از اون چیزی که مشکل روانی ماست ما نتونستیم حرف خودمون تحویل بکنیم به طرف مقابل پس باید اون رو نابود بکنیم سرکوب بکنیم از دستش راحت بشی دیکتاتورهای زمان خودمون زیادن دیکتاتورها ملا میشه شیخ میشه عالم میشه بازاری میشه قاضی میشه تحمیلت میکنن همون باسپورز هم تو تحمیل میکنه که تو جرمی که نکردی به بگیری اعترافش بگی، اعترافش بگنی ولی که اون شخصی که دامنش پاکه خیالش راحته خوابش راحته آسایش داره با اعتماد کامل به الله میاد نیسته صحبتشو میکنه. از خودش دفاع میکنه صاحب حق نباد بترسه اگرم به مظلومیت سرش بالا دار بردن بداند اون شخص هر شخصی میخواد باشه خونش به ناحق ریخته شد. اون خونش برای خودش تابشی از حقیقت خواهد داشت اگر در حیاتش در زندگیش طعم براءت را نکشید و نچشید بداند که پس از مرگش تابش اون نورش شرق و غرب کره زمین خواهد رسید همه از اسم و یاد و نامش خواهند یوسف نامش به دربار پادشاهی رسید چه برسه به زبان مردم زلیخا میاد به طرف خودش جذبش میکنه گمراش بکنه, بکنه. عزیز مصر میاد التماس میکنه ای یوسف اعرضن هذا تو تششب پوشون واستغفر لدن بک تو میزن تو بکن کسی نفهمه ولی نه خدمی هست دیوار موش داره و موش گوش داره این میشنوه اون میشنوه یه کلاغ چلقلاغ میشه و این صحبت تو دربار میپیچه خاصن تو زندانش بندازن حقیقت پنهان بشه در پوشش بذارن ولی الله چیز دیگه میخواد جلسه گذشته گفتیم مندن در پوشش بذارن یوسف زندان بندازن که کسی نفهمه ماجرا قضیه چیه ولی که الان حس حصل حق زلیخا میاد زن عزیز مصر میاد میگه الان دیگه باید حق آشکار بشه الان حق آشکار شد شرق و غرب از براعت یوسف فهمیدن یوسف نمیخواد وارد یک کاری بشه در یک جایگاه منصبی بشینه و مردم پشت حرف حدیث داشته باشن بگن ها این دلش هم با اون زن مرتکب فاحشه بشه نمیخواد حرف حدیث روش سرش باشه نمیخواد مردم پشت سرش به ناحق حرف بزنن به خاطر همین یوسف سب میکنه میگه بذارید پادشاه مصر من روبرو باش بیستم ولی قبل از اون پرونده دوباره باز بشه که من تبرعه بشم که آیا واقعا اون تهمتایی که به من زدن واقعیت داره یا نداره قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء زنا نگفته که ما نکردیم نمیدونسیم گفتن ما تنها چیزی که میتونیم اینجا در این مقام بگیم این یوسف ما علمن علیه منسو یوسف هیچ بدی ازش ندیدیم یوسف آدم پاکیه همون زنایی که سبب شدن یوسف به زندان انداخته بشه که توطعه کردن با زن عزیز مصر همون زنا الان همون زنایی که شهادت دادن بر علیه یوسف و سبب شدن یوسف به زندان بیفته همون زنا اینجا میگن ما هیچ بدی از یوسف ندیدیم از یه طرفی هم نمیخوانم مستقیم بگن که مقصر زن عزیز مصر همسر عزیز مصر اون مقصره ولی که خود همسر عزیز مصر به زبان در میاد اونجا اعتراف میکنه اعتراف فزیلته ما قر اشتباه کردیم جرمی مرتکب شدیم وجدان رو راحت میکنیم اگر اشتباه کردیم اشتباه رو بپذیریم همونطور که اینجا الله بهمون درس میده این زن زن عزیز مصر عزت مییابه نه اینکه درسته که در ابتدای قصه شاد انسان به خودش بگه چقدر این زن مکار بود چقدر این زن فاحشه بود چقدر این زن ولی که الان دیگه قضیه عوض میشه 50 آیه از سوره یوسف بدی و بدبینی و بدکاری دارید ولی پنجه آیه بعد خوبی و خوبکاری و عزت و عزتیابی و شرفیابی و همه میبینید مقام ها میاد الان دیگه به قول خودمون توپ تو زمین یوسف علیه السلام الان دیگه گذشت نصف سوره صفحه عوض شد جزء جدیده سیزه هم داره شروع میشه اینجا گذشت این پرونده درش بسته میشه پرونده دیگری درش باز میشه فانه اینجا ما قشنگ میبینیم سختی بود ولی که آسونی که خاطر اومد چندین برابره اون سختیه همونطور که الله وعده میده و من یتق الله یجعل له تقوای الله پیشه گرفتی الله گشایشی برات در زندگیت در پیش رویت خواهد گذاشت و یرزقه من حیف الله یحتسب از جایی که فکر نمی کنی روزت می رسونه تقوای الله حالا چه میخواد مسئله طلاق باشه زواج باشه معامله باشه تهمت ها باشه هر چیزی که هست هر مشکلی که برای در زندگی پیش میاد، تقوای الله را رضای الهی را پیش گرفتی مسیرش عزت شرفه مسیرش کامیابی مسیرش رستگاری مسیرش رضایت الهی مسیرش محبت مردم نسبت به تو رضایت مردم نسبت به تو هر چند که دشمنان بخوان بیان تو رو تخریب بکنن بخوان تو رو از چشم مردم بندازن بدان که اگر تو بر حقی اگر تقوای الله را پیشه گرفتی تو در چشم مردم عزیز خواهی شد مردم حق را حق به حقدار میرسه حق را میتونن تشخیص بدم که حق باقیه. اینجا در این مقام زن عزیز واقع شده قالت امراه العزیز زن عزیز مصر میگه الان حس حصل حق الان دیگر حق آشکار شده آشکار گشته همه میدانن از صدق یوسف همه میدانن از براءت یوسف یوسف شده مرجع زندانیان مردم خوابی میبینن میرن پیش یوسف ای یوسف تعبیر کن مردم حکمی میخوان میرن پیش یوسف ای یوسف تو بگو مردم دلتنگی دارن میرن پیش یوسف یوسف تو بگو مردم مشکل با همسرشون دارن میرن پیش یوسف یوسف تو بگو یوسف آدم صالحیه یوسف به حق قضاوت نمیکنه. یوسف به حق نصیحت نمیکنه. زبان مردم خوبی گفتن از یوسفه اون کسی که پاکه من چی بگم؟ من هرچی بگم برعلی خودمه خودسن اینجا که من مقصرم اصلا اعتراف به حق اعتراف به حق اول حق یوسف را چیکار می کنه؟ بهش اعتراف می کنه یوسف زنو اول گفتن پاکه اینا مهر تایید میزنه. حق از ناحق از باطل مشخص شده یوسف بریست شکی نیست حرف این زنا درسته حرف این زنا درسته یوسف علیه السلام آدم پاکیه این تصدیق بر یوسف و ایمان به یوسف این زن ایمان اوورده الان و این ایمان که در این زن دگرگونی اوورده اعتراف اوورده انا راوتهو عن نفسه چه موقع توبه پیش میاد وقتی که تو ایمان به ملاقات الله داشته باشی ایمان به حساب و کتاب داشته باشی ایمان به تازضوی اعمال داشته باشی در صحنه محشر ایمان به روز رست و محشر داشته باشی. اونجا روز حساب و کتابه وقتی که تو جلوی روی خودت الله را ببینی حساب و کتاب الهی را ببینی اونجا هست که میخوای خواهی تابان اون گناه را در این دنیا پس پسویی تا چیزی بر در روز قیامد نباشه سنگینی بکنه. زن میاد نظر از وسلم. هكذا رسول الله مرتكب الزنا وشنا بزر الطوبانش وفاسم ده. رسول الله رو میگردونه میگه که برو بین خودت الله توبه کن الله ترى میبخشه میگه نه یا رسول الله میخوام قصاص بشم بازم رو برمیگردونه میاد صدق این زن رو ببینی بازم این زن میاد جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله گورو کردم آدم با در این دنیا ببینم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حامل نیست میگه بله برو زایمون کن بعد بیا زایمون میکنه بعد میاد میگه یا رسول الله الان قصاص بر من اجرا کن گفت که نه بچت حق داره بذار دو سال شیرش بده دو سال بهش شیر میده میاد بعد از دو سال میگه صدق این زن بازم یارا رسول, رسول الله جرم و این جنایت و مرتکب شدم یا رسول الله قصاص بشم بعد دستور می در رسول الله سنگسار بشه. این صدق این زن اصحاب گفتن چرا این زن آبروی خودش داره میبره رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون اصحاب یارانش میگه, میگه والله این زن توبه کرده که بر اهل مدینه اگر بر تک تک شما در اونجا پخش بشه از توبه این زن گناهان تمام شما بخشیده و امرزیده میشه این قد توبه این زن نسوح ساده. چه موقع در این حالت ها بدین صورت که زن عزیز مسیح بدین صورت که این زن غامدیه اومد توبه کرد انسان توبه میکنه و به درگاه الهی اعتراف به تقصیر و کتایش میکنه اون موقعی که حساب و کتاب اون موقعی که عذاب قبر براش یقین داشته باشه بدونه که واقعا اون زنجیرهای با اون کشون کشون میگشن به جهنم حقه ضعف به ایمان به آخرت ضعف به مناقات الهی ضعف به روز آخرت سبب هر جور جنایتی بشه همونطور که یوسف نسبت به برادرانش گفت گفت برادران من ایمان به روز آخرت رو فراموش کردن که حساب کتابی هست انسان شاد به فراموش بسپره این ایمان درش ضعیف بشه این ایمانه که جلو انسان انصار را میگیره واسب میشه که به جرمش به جنایتش اعتراف بکنه تقوای الهی ترس از حساب و کتاب قالت امراه العزیز الان حس حق الحق انا راودته عن نفسي مقصر منم منم مراودش کردم منم منم خاصم اونو گمراه بکنم در فحشش بندازم منم این اعتراف توبه است این توبه نسوح این زنه در جمع اعلام میکنه من توبه کردم کتمانش نکرد چون ایمان ورده به یوسف ایمان ورده به اون الله که یوسف میپرسه اون الله که یوسف بهش دعوت میداد به اون الله یکتا ایمان ورده به روز آخرت ایمان ورده اینجا هست که سر میشه اعتراف کنه و توبه بکنه و انه لمن الصادقین یوسف آدم صدیقی هست صادق در دعوتش صادق در حرفش صادق در رفتارش صادق در ارزشش و در پاکدامنیش یوسف جو صدق چیز دیگه ازش نمیبینی این نزاهته این پاکدامنیه این عزت شرفه همه بهش اعتراف دارن از یوسف یوسف بدی ازش سر نزده ذلک الیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین ذلک ليعلم انی لم اخنه بالغیب بدونه یوسف من پشت سرش در اونجایی که یوسف نبوده در غیبتش خیانتی بهش نکردم ناروایی بهش نزدم جلوی زنا وقتی که زنا اومدن گفتن که زن عزیز مصر ترود فتاه نفسی ها و برده خودش رو گمراه بکنه و به طرف خودش بکشونه و فلان و حرف و حدیث شد اومد میوره اورد چاقور اورد دستشونو بریدن چی بود هدف چی بود هدفی بود که گناه خودش توجیه بکنه نه کنید این یوسف با این جمال من نمی تونم جلو خودم میگیرم اعتراف داشت گفتیم شرم نداشت در مقابل اون گناهش اونجا زن عاصی بود کسی که گناهکار از گناهش شرمی نداره حیایی نداره با اون کمال بی هرمی گفت که بله من این کارو کردم اینجا هم داره اعتراف بیکنه میگه که من تهمتی ناروهی یوسف نزدم در غیبت یوسف من نیمیدم بگم که یوسف زناکار فاحش است من تهمتی یوسف نزدم درسته که زندانش انداخته ها. ولی میگه که من بر صادقیت یوسف بر صدقش در ارزش در پاکدامنیش در رفتارش در اون دعوتش بگه من در اون مسائل خیانت بهش نزدم. زندان انداخته شده چون حرف منو گوش نکرده به خاطر پاک که زندان افتاده من براش پاپوشی درست نکردم من براش حرف و حدیثی نساختم درسته که من اینجا در قالب خصومت اومدم اومدم بهش اینطوری مثلا باهاش برخورد کردم برو رو به زندان انداختم ولی که تهمت بهش نزدم مقصر خودمم و ان الله لا يهدي كيد هر, هر چقدر بخواد مکر بکنه الله هدایتش نمیکنه. کنه طرف زنب اون ایمانی که داره ان الله لا یهدی کید الخائنی هر کسی بخواد خیانت بکنه اون کسی که یا هر کسی بخواد توته بکنه با علی شخصی بدون اون فرد الله هی داره که ازش حمایت بکنه الله ولی الذين آمنو اگر مؤمنه اون مسیر کید هدایت نمیشه به طرف اون شخص یقیدون کیدا و کیده اللهم کید میکنه کسی به خدماک رو بکنه نیرنگی بکنه الله هست از اون طرف اون کید رو از مسیرش خارج میکنه نمیذاره که به اون شخص مومن برسه طرف حساب الله و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین هر کسی مکری بکنه اون مکر به خودش برمیگرده یوسف رو به هم انداختن که خارش بکنن ولی کن چی شد مکر به کی برگشت به سجده کنان و ذلت خاری خودشون در جلوی یوسف یوسف بالا رفت و عزت یافت اینجا هم این زن قبل از این, این ماجرای یوسف را نمیفهمیم نمیدونن جریان یوسف چیه اینجا این زن قبل از اینکه ماجره یوسف و حقیقت آشکار شدنه مسئله یوسف پیش بیاد اینجا از اون مکر زنا خبر میده میگه که مکر ما هم نتونست کاری به پیش ببره و شان یوسف را کم بکنه بلکه اینجا الله و یوسف رو عزت داد و ما سر شکسته و صرف شدیم و یوسف سرفراز سرش بالا یوسف دامنش باک دامنش باک اهل عبادته اهل تقواس اهل صدقه پس هر کسی بخواد مکری بکنه آخر به خودش برمیگرده رسوایش به خودشه. اینجا هم این زن رسواه شده. اینجا هم این زن آبروش رفته و اعتراف میکنه به گناهش میگه و ما ابره و نفسی. اصلاً خودمو تبرئه نمیکنم. نمیام از خودم دفاع بکنم. دفاع این نیست که من اینجا از گناهای خودم داشته باشم. گناهکارم. میگن شرط تو به ندامت و پشیمونی یعنی این درس بگیره ای مؤمن. هر گناهی کردی پشیمون شو. به پدرت بدی کردی، به مادرت بدی کردی، برو صدقه بده. به جا شو. دعای خیلی براش بگو. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بار الله نهارو ببخش بياموس بزرگم كاردن من در حقشون كتوهيد وشتن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرما رغم أنف رجون أدرك والدي ولم يدخلاه الجنة بني ان شخص بخاكم والدي بشه پدر مادرش زنده باشن پدر مادرش او روارد بهش نکن بني ان شخص مولیده بشه بر خاک، رمضان بیاد الله رو نبخشه. این رمضان سبب نشه خودشو اصلاح بکنه، توبه بکنه. بینیش به خاک مالیده بشه. اون شخصی که رمضان اصلاحش نکنه، به اشتباهش بینه نبره به بدیش بینه نبره رغم ان فرجول بینیش به خاک مالیده بشه. این رمضان برای اصلاحه، برای اینکه ما توبه بکنیم برای اینکه ما بر عبادتمون سفت و محکم و استوار باشیم، نمازمون فوت نشه، نماز صبح، نماز عصر خصوصا این نمازی که منافقین ازش کوتاهی میکنن از ادای اون در جماعت توبه‌مون نسوح باشه بر استقامت و دینداری و ما ابراء نفسی پس شرط توبه چیه ندامت و پشیمانی این شرط توبه است و اینکه دوباره انسان به اون گناه برنگرده و اعتراف بکنه و ما ابراء نفسی ان النفس لاماره بالسوء نفس هر نفس انسانی اماره به سو هست یعنی نفسی نیست جز اینکه او را به بدی دعوت بده به بدی بکشونه هر نفسی هم تو که رسول صلی اللہ و می هر فردی شیطانی داره که او را به بدی دعوت بده و فرشته ملکی هم داره در عزاش که او را به خوبی دعوت بده بخاطر همین صحبت و سخنش اینجا پایان نداد گفت اِلَّا مَا رَحِمَ ربی. مگر مرحومین نفس اماره حمت به نفس غیر اماره مرحومین که در مشمول رحمت الهی واقع شده یوسف علیه السلام همم بی ها لولا را برهان ربه گفتیم چی؟ یوسف قصدش هم نکرد چون برهانی از الهی در جلو پیش روی خودش میبینه الله او را نجات میده که حتی اون هم اون قسم در دلش نسبت به اون زن پیش نیاد هرچند که اون زن خودشو آماده ساخته آماده کرده برایه پس الا ما رحم ربی مگر اونایی که الله رحمشون کرده مشمول رحمت الهی بشی الله را و چش خودت ببینی الله تو را نجات میده همونطور که یوسف را نجات داد در هر گناهی که میخوای واقع شده باشی الله تو را نجات ولی اعتراف مهمه وگرنه سیاهی هست تاریکی سنگدلیه ان النفس لاماره بالسوء پس شیطانی هست. هر کدوم از ما داریم فرمانت رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگه امم میونه میگه حتی تو هم یا رسول الله شیطان داری میگه بله ولی که مال من مسلمان شده شیطان رسول الله دیگه فرق میکنه رسول الله در امان ازش ولی که ماها در امان نیستیم تون خلق خدا شیطانی دارید که شما رو بدی دعوت میده و شما به سجابت هم میکنید نه که بگید که نه ما دامن ما درست شیطان داریم ولی ما حرف فرشته رو گوش میکنیم نه هممون خطا میکنیم کی هست مثل یوسف دامنش چنین پاک باشه که زنی خودش آماده بکنه در یک صحنه خلوتی در غربت قرار بگیره بعد بگه من دلم نکشید والله این نهایت ایمان رو بیخواد نهایت صدق پاک پاکدمنی منی میخواد اکسی ببینه تحریک نشه فیلم ببینه لخت و آریان تحریک نشه به طرفش کشنده نشه این نهایت ایمان رو میخواد این ایمان را الله ارزشش به ما نشون میده در قصه یوسف نهایت یوسف کشیده نشد به اون طرف اون زن مشمول رحمت من واقع شد چرا چون ایمانش به کمال رسیده بس ایمانتون رو سعی بکنید به کمالش برسونید با تهجد با نمازهای نافله قبلیه بعدیه با اذکار اذکار صبحگاه اسکار شامگاه پایبند بشید به شریعت الله با پایبندی به شریعت مشمول رحمت الهی میشید پایبند نشدید از این مرحومیت استثنا میشید میشید تابع نفس اماره ان ربی غفور و رحیم من عبود من بخشنده است و رحیم بعد از اینکه خطاهاش را گفت تقاضای مغفرت و بخشش و آمرزیدن رو داره این زن و اینکه مشمول رحمت الهی بشه این اعترافشه این ایمانشه بعد از این همه سال در گمراهی اینجا هدایت میشه این زن و این جنین الله بهش عزت میده با اون ایمانش با اون تقواش و با اون اعترافی که داشته الله بهمون همه صدق در ایمانمون صدق در رفتارمون در اخلاقمون بده و قلب ما را سرشار از ایمان بکنه که در نفس ما وسوسی ای بر گناهی بر معصیتی بر بدی نیفته سبحانك الله وبحمدك سبحان الله صلی الله علی محمد و آل محمد